بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في فلقه تغيرة بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكثر فصلّ لربك وانحر إن شاء صدق الله العلي أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم مصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين و لعن دائم على اعدائهم و مخالفیهم و منکری فضائلهم ومناقبهم من الان الى قیام یوم الدین انشاءالله که از ها از همگی قبول باشه و این مجالس و ازای بی بی فاطمه زهراب از همه محبین مورد قبول درگاه الهی قرار بگیره و اجر اخروی اون برای همگی محفوظ و خداوند به برکت این مجالس لطف و مرحمتی بر همه ما انعایت کند و بقیه دوران غیبت آقا امام عصر اجل الله تعالی فرجه شریف رو بر ما ببخشاید و به برکت نام این بیبی پهلو شکسته امسال سال ظهور و فرج فرزند برومندشان قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد خب بحمد الله نشست های فاخر و بسیار پویا و خوبی در پژوهشگاه خاتم و نبیین برگزار شده این نه اولین نشسته و نه آخرین نشست انشاءالله و به همدلاله گروه های علمی بسیار خوب توانمندی واقعا تشکر میکنیم از ریاست پژوهشگاه جناب حجت الاسلام و المسلمین آی دکتر اماد که نظارت دارند با تمام مشغله، بارها دیدم که خود ایشون حضور دارند و تمام اون نشست رو با دقت نگاه می کنن. گاهی راهنمایی های به جا این, این نشستها ها ادامه داشته باشه واقعا بحث های کلامی و فرقدیانی الان در جامعه بسیار مورد مراجعه واقع شده من خیلی وقت رو نگیرم خب کرسی کرسی نظری پردازی و گفتگو هست گاهی کرسی هایی که اینجا برگزار شده ارائه دهنده داشته نقاد داشته گاهی نظری پردازی بوده گاهی فقط انتقادی و در جلسه بعد نقد و کرسی های مختلفی که برای گروه های پژوهشی مختلف برگزار شده این جلسه رو اختصاص دادن به کارگروه یا گروه تصوف که خب چندین نشست هم این گروه داشتن کارهای تحقیقی که داشتن بعضی از نشست ها پیاده سازی شده مقالات خوبی شده بحثی رو که من حالا خیلی وقت رو نگیرم یکی از مهمترین مباحث بشری بحث توحید بوده همیشه در طول تاریخ اصلا انبیا، اومدن که توحید رو به مردم یاد بدن مردم رو موهد کنن از شرک دور کنن و شعار همه انبیا هم توحید بوده و توحید رو به مردم آموزش دادن خب یک وقت دشمنان ظاهری داشتن مثل فرعون ها که راحت شناخته می شدند. یک وقت نه کسانی بودند که از درون دین به اسم دین به نام دین دین رو نابود کردند مثل سامری ها که جالبه عین شرک رو به اسم عین توحید به موهدین اون قوم ارائه دادند و اونا میپرستیدن اونها مشرک نمیخواستن بشن چون وقتی گوساله درست شد تعبیر آیه قرآن اینه که سامری گفت هازا الهکم و اله و موسا همون خدای موسا رو بپرستی موهد باد باشید ولی جالبه وقتی با لباس دین باشه این شرک یعنی بدترین نوع شرک مجسمه ای رو به علوهیت گرفتن تبدیل میشه به توحید این خطر بزرگی میشه که همیشه هم باز توی عدیان گذشته و عدیان مختلف این بحث ها بوده یکی از مباحث مهم و پرچالش و پرگفتگوه حالا ما تو بحث خودمون که بحث تصوف هست میدونیم که باز تو تصوف یکی از مباحثی رو که بسیار در موردش گفتگو میکنن و به سرقت میبرند، و تعویل و توجیه و تفسیر میکنن همین بحث وحدت وجود یا همین در واقع بحث توحید رو به جاهایی می کشونن که خودشون بخوان ازش تفسیر ارائه بدن خب این بحث خیلی هم تو طول تاریخ اسلام پر پرگفتگو بوده بین مکاتب مختلف هم بین متکلمین هم بین عرفا هم بین فلاسفه هم بین صوفیه هم بین پیروان بلاخره مکتب وحیانی یا بگیم سقلین هر کسی هم چون همه هم در واقع حرفشون اینه که ما مسلمانیم پس عدلشون رو میخوان از سقلین ارائه بدن تو فاز اول تو این جلسه خدمتی یکی از بزرگواران جناب آیه دکتر آسد محسن هندی هستیم خبیشون دکتراشون دکترای فلسفه هستن پایان نامشون همین موضوع بوده اول یه نفر اینها رو تقریر کنه چون بعض وقتا به بحث که گذاشته میشه میبینید اون صوفی کم سواد هم جالبه وقتی بهش میگید این حرف تو توحید اهل بیت نیست میگه شما نفهمیدید وحدت وجودی که من میگم مثلا ده مدل، 12 مدل حالا از من یادم از سه مدل تقریر مطرح بود تا 16 مدل تقریر یا به قول آقای دکتر هندی تا 19 مدل تقریر هم ایشون احصاء کردن خب تا که حرف می‌زنی میگه تو نفهمیدی من کدومشو دارم میگم تا خب با اول باید این حالا چه قبول داریم چه نداریم بحثی نیست یک نظریه پرداز خبره اول تقریر کنیم انواعش چی داره میگه بعد اگر انتقادی داریم به کدومش نقد داریم بعد آیا اینا حالا دیگه جلسات متعددی میطلبه؟ جالبه بین خود صوفیه دعوایی هست تو فهم این معنا بین خود فلاسفه چطور بین خود متکلمین چطور آیا دعوایی هست یا همه یک فهم رو کردن یا نه بین اونها هم نقدهای درونی هست مثلا فرض کن فلاسفه نقدهای به توحید هم دارن آیا خود عرفا چطور نقدهایی دارن یا همه عرفا اینو هم میخوام بگیم عرفا اینو میگن همهشون اینو میگن یا نه بعضشون اگه بگیم صوفیه این رو میگن حرف همه صوفیه است یا بعضشون یا نه این تقریرها این همش ادعاست و اینا همش من هیچ کدوم نمیخوام بگم درست یا غلط چون تو یک جلسه که این جلسه هست ان تقریرها رو میشنویم تو جلسه بعدی یا جلسات بعد که اگر بالاخره بزرگواری کنن دوستان و جناب حجت الاسلام و المسلم جوی اماد حمایت کنن ادامه پیدا بکنه دیگه حالا بعد نقد گفته بشه گاهی حتی نظریه پرداز و ناقد بیاد وسط فعلا تو بحث یعنی موضوع درنگی در تقریرهای مختلف نظریه وحدت وجود هست از می کنم وقتی دکتر هندی رو گرفتیم دعوت میکنیم با ذکر یک سلوات بر محمد و آل محمد اللهم سنگه من دیگه اینجا سکوت بکنم تا انشالله استفاده میکنیم از بیانات و نظریات باز عرض کنم. جناب های دکتر سید محسن هندی دکتراشون دکترای فلسفه است. پایان تو همین موضوع دارن. متخصصی فن هستند و نظرات نظرات و ارائه خود ایشونه. اگر علمی درست دقیق که همین جورم هست خوشحال میشید امتیازش مال ایشونه اگر اشتباه ضعف داره پاسخگو بنده نیستم این مرکزم نیست خود ایشون یا آدم متخصصی که میتونن دفاع کنن از نظریاتشون ان اون دفاع ها میره تو جلسات بعدی در خدمتون هستم دکتر ببخشید الحمد <تور> لله رب <تور> العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين و اعتن الله على اعدائهم اجمعين من الان الى يوم الدين همونجوری که به درستی فرمودن جناب استاد احیانا در مقام نقد کسانی که منتقد وحدت وجودن گفته میشه که شما که ناقد هستید کدوم یکی از تقریرها رو نقد میکنید برخی از تقریرهای وحدت وجود مورد انتقاد خود ما ای که قائل به وحدت وجود هستیم هم هست یعنی ما همون تقریرها رو نمیپذیریم و نمیپسندیم و شاید برای شما که منتقد هستید یک سوء تفاهمی شده و یک چیزی رو دارید نقد میکنید که خب مورد رضا و امضای ما هم نیست و ما هم نمیپذیریم. لذا مشخص کنید شما که میگید ما قبول نداریم این وحدت وجود را به کدوم تبین، به کدوم تقریر، به کدوم توضیح و آن. یک جلسه‌ی ای بود که نمی‌دونم حالا دفتر آقای رشاد بود، پژوهشگاه بود، برگزار کرده بود. مواسسه‌ی ایشون بود یا پژوهشگاه بود کجا بود که اطفاق خود جناب استاد آقای سبحان آقای محمد تقی سبحانی هم ایشان هم دبیر علمی بودن آیت الله سیدان دامظله ایشون منتقد بودن گویا یا ایراد دهنده بودن راجع به رابطه عقل و دین و فلسفه با اینها بود اگر اشتباه کنم آقای فیازی آقای پارسانی هم خوب مثلا ناقد بودن آقای فیازی استاد فیازی ایشان هم اونجا همین رو به آقای سیدان گفتن که آقا شما که میگی من وحدت وجود را قبول ندارم کدوم نظری رو میگی برخی از تغییر. ها رو خود شما ما جا قبول دارید برخی از تغییرهای وحدت وجود خود شما هم قبول دارید فلیزا <تصفح> به نظر میرسه که ببخشید من یه مقبل هم مریض احوالم عدس خواهم دیگه صرفای ریز و اینا شایسته است که خب این روشن بشه و معلوم بشه چند تقریر وجود داره خود جناب باز استاد فیازی در اون اثر چار جلدیشون بررسی ها و همچی چیزی اشتباه نکنه و اون مناظری که با جناب استاد اشاقی خب. شونزده تقریر ارائه دادن، اونجا 15 تا اینجا شونزده تا دیگه جلسه ی من شاید پنشیش سال پیش بود، قبل کرونا اینا بود خدمتشون بودم، فرمودم من تا تا رسوندم این تقریرها رو، 20 تا بیست 20 و چند تا و اینا. حالا بنده نوزده تا رو عرض میکنم، سعی می‌کنم. برخیش رو با سرعت عبور بکنم که وقت هم انشالله کم نیاریم خب، اگر اجازه بدید دیگه من وارد. خود تقریرها بشم ولبته ترس کردم از این کتاب بهره فراوان بردم اون تا خب قهرن یه تنبیهی شده یه کم و زیادی شده که اونم هر هرکی به اون کتاب مراجعه کنه احتمالا مشخص میشه خب تقریر اول تقریر اول خود ایشون انبان گذاشتن وحدت مفهوم این خودش یه تقریر وحدت وجوده یا یکی از تبینهای تشکیکه تشکیک وجوده که <كتصال> مثلا منصوب به فهلویونه باز خود استاد معتقدند که استاد فیازی که آقای علامه تبا هم در بدایه همین تقریر رو ارائه میدن وحدت مفهوم یعنی چی؟ اینجا هم ما وحدت در کسرت داریم ولی وحدت راجع به مفهوم کسرت راجع به مصداق یعنی مسادیق متعددن خداوند یک وجود ما سوا وجودهای دیگر کسرت است کاملا و مثلا غیر همن وجود حق و وجود ماسوا لکن در مفهوم وجود و موجود مشترک هم. یعنی حقیقتا خدا موجوده و حقیقتا هم ماسوا موجودن اشتراک معنوی مثلا وجود از همین اثبات میشه که خب در وجود یکی وحدت وجود الان یه تقریر از وحدت وجوده وحدت مفهوم با کسیت مستاق شاید مثلا زواهر البته نکنه کنه زواهر کلمات مشاین هم همین باشه بو علی و همثال زالک همین باشه خب اگر این یه تغییر از وحدت وجود خب بسیار خب تقریب دوم ایشون نامگذاری کردن وحدت وجود کامل یعنی چی؟ یعنی بگیم ما سوای حق اینها مرکب از وجود و باز یعنی چی؟ یعنی الان این موجوده یعنی کمالاتی رو فی جمله دارد این و بیشمار کمالات را ندارد فاقده در حالی که خداوند صبحان اینگونه نیست فاقد کمال نیست نقصی ندارد او مرکب از وجود و عدم نیست ولی اینها چی مرکب از وجود ها. یک شعری هست از مرحوم نراغی رزوان مل احمد نراغی که نیستی بود همه نقصان تو عجز و جهل و حاجت و خزلان تو حالا من مقداری تقدی کردم گر مرا بودی بود از بود توست ور وجودی رشحی از جود توست آنچه هست از توست ای این الحیات خواه فعل و خواه وصف و خواه ذات این مثلا بگیم نهایتا همین رو میخواد بگیه یعنی خلاصه به همین معنا واقعا خدا یک موجود ما مو سوا موجود دیگر لکن اینها عدمشون اینقدر زیاده به تبیری خیلی ساده که نیستن که انه معدومن در حکم عدمن تنزیلا معدومن ولی واقعا نموجودن خب این تق... تقریر دوم یا تفسیر دوم تفسیر سوم این انوانگزاری شده و خوبم است وحدت اسم وجود اسم وجود یعنی چی؟ یعنی میگیم آقا تنها موجودی که شایستگی و استحقاق نام وجود رو داره خداست ولا غیر فقط اوست که شعنیت داره او رو وجود بنامیم نامیم ما سوا چنین لیاقتی رو ندارن مثلا فرض بفرمایید ملا عبدالله زنوزی که شاگرد ملا علی نوریست در حکمت و امثال زاله در لمعات الهیه تعبیرشون اینه من میخوانم از رو وجودات امکانیه حقائق تعلقیه اند و حیثیت ارتباطیه اند نسبت آنها به مفیز خود نسبت ضعف به شدت و نسبت نقص به کمال و نسبت فقر به غناست پس نسبت حقایق امکانیه و وجودات تعلقیه به حقیقت وجود صرف نسبت نیستی به است به این معنا که هرگاه او وجود است پس اینها در جنب او به منزله عدم اینم این هم عرض اون شعری که شعر مشهور سعدی که داره همه هرچه هستند از آن کمترند که با هستیش نام هستی بران همینه همین تقریر از وحدت وجود. بسیار خوب این شد تغییر مثلا ثوم یا چهارم تغییر چهارم برای دیگه فکرمم ثوم شد چهارم این انوانش اینه وحدت وجود کسرت موجود داله. وحدت وجود کسرت موجود این چیه؟ تغییرش چیه؟ این رو منصوب به زوق و تعلوه جناب دوانی این رو مطرح میکنه مثلا مرحوم اخونده ملا صدرا هم خیلی نسبت به این تغییر آلرژی داره یعنی جا به جا تو اصفار و دیگر آثار ظاهرا اول خودش به این تغییر قائل بوده بعد از این نظر برگشته و جا به جا حمله میکنه هر وقت این رو نقل میکنه حمله میکنه که این مثلا درست نیست دقیق نیست حالا عرض میکنم این منصوب به زوق و اگر باز دوستان بدایر خونده باشن نهایتا خونده باشن ایشون هم تغییر میکنه این تبیین رو مرحوم علامه و بعد نقد میکنه و اون تبینش تقریبا اینه که آقا ما ما سوا وجود نیستن موجودن و مثلا در اونها ماهیت اسیله فرض و فرمایه. خوب خب وقت سؤال میشه آقا موجود مگه مشتق نیست چرا موجود یعنی ذاتی که متصف به وجوده خب این چجور مشتقیه که وجود نداره خب موجوده وجود داره دیگه متصف به وجوده این چجور میشه میگن نه این یه سنخ مشتق خاصه مثل فرض فرمایید لابن و تامر لابن یعنی شیرفروش در هویت شیرفروش شیر, شیر وصف اونیست او چون یک نسبتی مثل اینکه که میگم فلانی تهرانیه تهران یعنی تهران جز به حوییتشه یه نسبتی با شهر تهران داره میشه تهرانی منصوب به تهران این مشتقم روحش به همین منابر میگرده یعنی وقتی میگیم موجوده مثل لابن مثل تامر منصوب به شیره چون شیرفروشه؟ شیر میفروشه ارتباط داره دیگر ارتباط وسیق داره با شیر این که انم مثلا شیر در هویتش آمده ولی رو شیر نیست بنده خدا این انسانه تامرم به شرحیزن اینجا هم همینه وقتی میگیم موجوده یعنی نسبت با هستی داره خودش هستی نداره مثلا ماهیت درش اصیله این تعبیر ذوق و تعلق که میگن همینه این طبیعی از وحدت وجود که حالا اینا مر در اون دررالفواهدش تعلیقایی که به شعر منظومه داره اینجور طبیعی میفهمند طبیعی خیلی خوبی هم از خیلی خلاصه و جمع جلد خودشون تو رسال المختاره خود دوانی مفصلنه تقریب کرده هذا مذهبون منصوبون الى ذوق تعله و عبرون ان به توحید خاصل خاص الخاص. خیلی خیلی خاصه و هولد و جمعون غفیر من المحققین کل محقق دوانی و المحقق داماد و چی؟ بله مال الیه صدر المتلهین من درست نوشته باشم فی برهتن من از زمان یه ای دوره ایشون هم داشته به این و حاصل هذا القول ان الوجود واحد حقیقی لا کثرت فیها اصلا لا به حسب الانواع ولا به حسب الافراد ولا به حسب المراتب ول موجود متعدد و هو الماهیه و موجودیت الکل بانتصابه الوجود ما سوا بله ماهیات متعددن ولی در وجود تعدد نیست در وجود وجود واحد مهزه که اینم یه تقریب. اما تقریب پنج نمول. به من اگر یه حالا هزتالیا گر پل بله بده که من سرعت کاری لازم باشه بگیرم، ولی انشالله زود جمعش میکنم. اما تقریب پنج ج. اینه. ببخشی. این تقریر انوانش اینه وحدت وجود عینی کثرت وجود علمی این یعنی چی؟ خیلی بخوام خلاصه عرض بکنم این باید بگم که آقا از جهت وجود باز یک وجود بیش نیست اما منی که مواجه میشم با این هستی خب از جهت ذهنی علمی فهمی او ماشه شء اینجا کسلت شکل میگیره یعنی یک هستی است من در مواجهه با او چیه تکسرات و تعینات متفنن و مختلفی به ذهن من عرض کنم که در ذهن من ظاهر میشه از جهت علمی تکسره به یک وجود یک وجود واحده من در مواجهه با او اینجا در اینجاست کثرت رخ میده مثل بحثی که راجبه وجود و ماهیت دارن یکی از تغلیرهای اصالت وجود و اعتباریت ماهیت همین دیگه میگن وجود که واحد خب ماهیات پس چی میشن میگن ماهیات ظهورات علمی وجود در ذهن در واقع یک وجود واحده ولی من که با این وجود مواجه میشم خب اینام کثرات میبینم در ذهن من اینا تجلی میکنه ظاهر میشه هویدا میشه و ماننده ها. یه همچین تبیینی خب اینا تو ایقاز و ناامین تقریبا چه مرز کردم اونجا مرحوم آخوند ملا صدرا داره که فتوحید للوجود ول کثرا و تمیز للعلم اذ قد تفهم من نحو واحد من الوجود معان کثیره و مفهوماتون چی؟ عدیده یک وجود واحد مفهومات متعدد از در مواجهه با او در ذهن ظاهر میشه ولی وجود واحد وجود کستت پیدا نمی این که تقریر پنجام اما ششم حالا این از اون طرفه یه فرق داره وحدت وجود علمی و کسرت وجود عینی برعکس او. در مقام علم شما یه موزلی بوده مقدمتان ارز بکنم در بس علم الهی میگن علم حیرت ذات الاضافه است خداوند از ازل به ما سوای خودش عالم بوده خب طرف اضافه از ازل بوده یا نبوده خداوند از ازل میداند این جلسه بناست در فلان تاریخ برگزار بشه خب خود این جلسه بوده یا نبوده و اگر نبوده چهجوری خدا به عدم علم داره بحثی است که در جای خودش در کلام و فلسفه اینا خب از عویسات و مطرح و انظار متعددی هم در ارتباط با حلش وجود داره این آقایونی که این نظر گفتن گویا خواستن مشکل و معضل رو حل بکنن اینا در رسائل فلسفیش مش ملاصدرا گزارش می‌کنه مراجع کن خاجه رساله ای داره در علم یا شرح العلم هم نیست اونجا این رو شده و سعی کرده تحلیل بکنه و اون احسائی صاحب قوال لالی ایشون هم داره که حتی یه بحثی رو برخی آدم یکی از اساتید مطرح میکرد اصاد حب الله بود به نظرم ایشون میفرمودن که جا داره که تحقیق بشه تأثرات ملا صدرا از احسائی صاحب همون قوال لالی یه بحث دیگریست خب. این نظر همینه میگه آقا اشیاء این کسرات در مقام علم واحدن در مقام علم حقیق وجود علمی دارن اونجا وحدت دارن خب کسرت به کجا برمیگره؟ کسرت به این وجودات دیگه خب بله در خارج نه کسرت دارن اذا به نظر اونجوری که حال ملاصدر را نقل میکنه تسری میکنه میگه نمیشه که خدا از ازل بینا علم حضوری داشته باشه چون اگه از ازل بخواد به ماسوای خودش که میخواد خلق کنه علم حضوری داشته باشه خدا میشه محل کثرات این خب مشکل داره محضولات محذولات حدوس اینا همه در خدا لازم میاد در خداوند سبحان در ذات حق پس چیه یه نحوه مثلا بفرمایید وجود زلی به عین وجود اینا چیه موجودن اونجا ولی وحدتته. در وجود علمیشون واحدن اینا یکی هم کسرتی نیست در وجود عینیشون بله عرض کنم که کسرت هست میشه کسرت عینی وحدت علمی بسیار این شیشون هفتم ببینید خداوند صبحان ازلم به ماسوای خودش علم داره یا نداره خب این ماسوا که خدا از ازلبینها علم داره اونه معدوم بودن دیگه به معدوم خداوند چجوری علم داره نبوده الان به این جلسه خدا ازلن عالم بوده املا عالم بوده اون جلسه که معدوم بوده در که خدا چگونه علم داره؟ میگن ها اشیایی که خداوند خلق میکند در زمان مثلا اینها یک وجود علمی در سوق ذات حق دارن که اون وجود واحده د. فرمون بودید؟ کسرت هم خارجی خب اینو تو مجموعه رسال فلسفیش مولا صدر تبگیل میکنه صفحه 454, 458 خب تغریر بعدی وحدت وجود مستقل و کثرت روابط یا وجودای رابط این در کلمات برخی بزرگان مثل مرحوم آقای مصباح هست در همون آموزش فلسفه و مانند دا ایشون اونجا اینو فرمودن که آقا بالاخره حتی اون نظر اول هم از برخی کلمات ایشون مفهوم قابل استیاد هست مرحوم آقای مصباح که آقا همه مخلوقات با مراتبشون همه از مجردات شما بگیرید تا مادیات اینها همه رابطن همهشون رابطن در این شریکن یعنی حیث وجودشون وجود رابطه خداوند وجود مستقله پس تنها وجود مستقل اوست و آقیر بقیه میشن رابط کسرت روابط وحدت وجود مستقل عبارتشون من یاد کردم چون همه موجودات معلول بیواسته یا باواسته خدای متعال هستند نتیجه گرفته می شود که عالم هستی یک وجود مستقل مطلق و وجودهای رابط و نامستقل چیه؟ بیشماری تشکیل یافته است که اون مستقل میشه خداوند سپان بقیه هم که میشن مخلوق خب تقریر بعدی این تقریره که من اشاره می کنم برخی محققان اینو فرمودن که آقا ذات حق موضوع هیچ مسئلهای در عرفان و فلسفه نیست غیب ذات بلکه معبود احدی هم نیست چون عبادت فرع بر معرفت اونجا انقاش کار کس نشود دام چین شی اونجا جراح نداره غیب ذات شما اصلا تا دارن تعبیرشون تصریح میکنن که اون مقامی که تباین محض داره با ما خودش هیچ سنقیت با ماسه رو داره تصریح میکنن این بزرگان خب <تصفيق> پس وحدت و کسرت کجا ترسیم میشه؟ حتی او فوق وحدت و کسرته حتی اون مقام ذات حتی نواهد نکسیر به یک معنا چون وحدت و کسرت خودش تعیینه خب او یک فیز دارد یک فیز منبسط به تعبیر خودشون که حالا تجلیه فیز عقدسه بحثای مبسوطی که در عرفانه یک فیزه واحد که الواحدم اونا این گونه توجیه میکنن که از اون صدر تا این ذیل یک فیزه همش که بقیه کسراتش در دامن اون فیزن اگر گفته میشود در لسان اعازم عرفا وحدت وجود یا عینیت اون وجود با ما سوا این ناظر به وجود نه ذات ذات اینیت نداره باش یا. او فوق این بحثا اصلا به ذهن نمیاد که شما بگی عین یا غیره تمام بسره فیض منبسطه تجلی واحدیت مثلا و مانند اون بله اون فیض منبسط یک وجود واحد بیکران کسرات هم به عین او چیه موجودن. او اون وجود لا به شرط به تعبیر خودشون لا به شرط قسمی تقسیم بندی دارن لا به شرط مقصمی قسمی اون وجود قسمی لا به شرط قسمی که عین کسراته با همه اینا اتحاد داره لکن باز خودش ورای اینهاست این در عینی که عین اینهاستون بی‌نهایت ورای اینام هست ذات اصلا فراچنگ کسی نمیاد که بخواد راجع به اون حرف بزنه لذا اونجا فراوان بزرگان عرفان گفتن که اصلا اونجا خودتون خسته نکنید بخواد اون ذات رو بیابید بچشید شهود کنید اصلا فرای ورای این به ذات قیب زات یا به تعبیر دیگه اسامی که داره خب این هم یه تقریر از وحدت وجود تقریر نهم وحدت شهوده یعنی چی؟ یعنی عارف در یک حالی قرار میگیره در همون سیر و سلوک ارفانی و ریاضت هایی که تحمل میکنه که تمام وجهه قلبش در یک حال خاصی که خودش هم درک میکنه چون تجربهش کرده فقط یک وجود میبیند رصد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند نه نیست لزوما نه نبیند برخی از بزرگان معاصر این رو تعبیر کردن به وحدت حکمی وجود تعبیرشون اینه یعنی حکمن گویا غیر از اویی نیست یعنی وقتی که میگن خورشید طلوع میکنه این ستارگان دیده نمیشن نه نیستن شما هستن تو موطن خودش دیده نمیشن اون خورشید حقیقت برای عارف اون تجلیه مثلا عتم ذات حق وقتی ظهور میکنه این عارف تمام وجه قلبش متوجه اوست دیگه از ماسوهای خودش کاملا غافل و زاهله این میشه وحدت یکی از تغییرهای وحدت وجود با عنوان وحدت شهود این هم یه تقریشه خب داره آقا علی زنوزی رزوان الله علی ایشون داره که ای قال العارف لیس الوجود الا هو اذ لیس دار غیرش غیرش غیر هو دیار یا او لیس فی جببتی سوالله این اینه فقط اخبر ان حالهی فی سیرهی چی ان بله نظام وجودات و موجودات به ماهیه وجودات و موجودات بله که بلا خارجتاً ان مرات قلبه حالا که من درست نوشته باشم ولی همینه یعنی میخواد بگه آقا جایی میرسه در سیر کهش دیگه اصلا نهار نمیبینه و در مرات قلبش فقط اون حقیقت تجلی میکنه خب یه تبیری هم مرحومه علامه مجلسی اول داره اونم هم تقریبا همینه حالا نمیخواد دیه. نیازی نداره که داره نقل میکنه برخی از تقریرهای وحدت وجود رو همینا رو میکرده. کتاب رد مذهب و حکم دوستان خواستم مراجعه بکنم صفحه 75 فکر میکنم خب اینم یه تقریر من اشکالتون رو بله. بیلن در حال بیان تقریرها و طبیعین تقریرها اگر اون تقریر رو متوجه نشونه اگر تقریر شوید. اشکال داره بفرماید اگر بد گفتم بفرمایید من نقد ندارم آلا اصلا نقد نکرم البته حالا که اومد بعضی هم دارن تو فضای مجازی سوال میکنن که فایده بیانش چیه آی دکتر تایید میکنید اینها رو نقد میکنید من هم جرس کنم مجددن حالا خدای دکترم جواب میدن خب مرحله اول بیانه مرحله دوم خب قاعدتا اگر به هر کدومش یا همش یا هیچ کدومش نقد هایی دارن اینشون اون فاز دوم کاره تو جنبندی حالا اینجا قطعا اشاره خواهند بالا کرد بالا که شبهه چون بعضی دارن میگن رو شبهه شده بره بعض از نطمع، نطمع. و این شبهه رو نطمع. در بیرادی برمیگردم همه من با همین دور برمیگردم بسیار ببخشید باید حسله کنید یه مقدارم بحثم شاید خستگی آور باشه ولی چاره ای نیستی. خوب دهم ده وحدت حقیقت وجود و کسرت رقیقت این یعنی چی؟ این تبیین نیست که خب شاید مثلا بتونیم بگیم مرحوم ملا صدرا تقریبا همین رو داره که وجود یک واحد شخصی است یک وجود بیش نیست حقیقتا حقیقت یک وجود بیش نیست بقیه رقائق اون وجودن حال بهترین مثالی که احیانا البته خودشونم میگن خاک بر فرق من و تمثیل من حقیقت فوق این حرفاست ولی شاید بهترین مثال یا یکی از بهترین مثال ها مثال نفس و شونش باشه که نفسی حقیقت بسیط از نظر آقایون و کثرت نداره ولی خب شما میبینید این همه قواه داره نفس عقل و چه و وهم و نمیدونم شهبت و قذب و چه و چه و چه, و چه خب الان به چه چجوری میشه میگن ها این کثرت به این وحدت موجود رقیقه و تنزل و تجلی و شعن همون واحده نه جدا حالا مثالی که برخی میزنم من وقتی گل رو تو ذهنم تصور میکنم این گل تمام حقیقت منه؟ نه اصلا وابد نفس من یه حقیقت خیلی عظیمه این گل غیر منه؟ حبازم نه به وجهی این منه به وجهی هم غیر منه از اون جهت که محدوده از اون جهت که حد داره از اون جهت که متعینه اون حدش خب این مبرر غیریته از اون جهت که خب بله وجودی ورای وجود من نداره اون مبیین عینیتش با من یعنی از این جهت عین من یک وجود دو وجود نیست حقیقتا یک وجوده که این رقیقه یا تنزل یا ترشوه یا تشعن همون وجود واحده که یک وجود همون تعبیری که راجب ذات و صفات خدا هست چگونه است شما میگید یک ذاته خب ولی عالم قادر رازق خالق یه رازی ذات یعنی ها ذات واحده ولی چی این معانی مختلف به عین همون ذات واحد حقیقتا موجوده و این از شعون همون ذات واحد. خب تقریر یازدهم وحدت حقیقت وجود و کسرت مجازی ما سوا. تو قبلی کسرت حقیقی بود وحدت هم حقیقی بود این نفس واقعی دیگه شوخی که نداریم که حقیقتاً موجودم ولی به این اون واحد اینجا کسرت مجازیه وحدت حقیقیه یعنی چی خیلی باز خلاصه عرض بکنم تو بحث حقیقت و مجاز این هست دیگه شما مثلا یک ظرفی رو قرار میدید بعد زیرشم مثلا شعله گاز روشن میکنید و این شعله میشه کم کم کم کم کم داغ میشه بعد شما بگید این یا این ظرف گرم شد اتصاف گرما به اون آبی که در مثلا دیگ وجود داره یا سماور وجود داره یا هر چیز دیگری میگی واقعا گرم شد بله اینجا واقعا گرم شد اما یه واسطه در سبوت اینجا هست به ذات گرم نشد یه آتشی بود اون اولا و به ذات خودش داغ بود ثانیان و به طبع اینو گرم کرد بعد نگید گرمه واقعا ولی گرما اینجا اصناد است. مجازی نیست حقیقتا گرمه ولی واسطه در ثبوت داره. اما امگا میگن واسطه در اروز میگن مجازه با غلط فرق داره. مجاز مجاز اسناد واقعا یعنی شما اسنادی که میتی غلط نیست درسته ولی مجازیه. اگر یه ناودونی باشه درش هیچ آبی جریان نداشته باشه شما بگی ناودون جاریست. جرل میزا میونه این حرف باطله. چرا جاره جر... میزاب چ... چ... چ... چ... چ... چیز آبی جاری نیست اینجا. اماگه باران بیاد و در اون میزاب آب جاری بشه بعد بگی جرا المیزا میگن ها این مجازه خب این چرا این مجاز اینجا مبررشیه شیه میگن اولا و بذات اون آب جاری است ثانیا و بلارض نه بتبع یا بالمجاز اون میزاب حالا اینجا هم همینه شما میگی این درخت موجوده این غلط نیست ولی حقیقتم نیست درخت موجود است مجازن یعنی به حیثیت وجود حق موجوده اگر حق نبود او اولا و به ذات موجوده این ثانیا و بالعرض موجوده که میشه تقریبا نمود اون بود بود حقیقی چیه؟ این نداره درخت که موجوده برخلاف اون چه مثلا متکلم میگه میگه نه به حیث تعلیلی موجوده یعنی خدا ایجادش کرده حقیقتاً بعد از ایجاد این حقیقتا موجود شد اون میگه نه حقیقتا اوست که موجود است از الان و ابدن این ثانیان و بلعرز موجوده با تبیینی که اشاره کردم کسی ام واسه مفصل ترش رو جناب استاد از پناه تو همون کتاب معروف دروس ارفان نظر نظریشون مبسوطا این رو باز کردن خیلی عالی توی چندین صفحه تبینش کردن این رو اصطلاحاً هم در حیثیت تقیدیه شعنیه و نفادیه و اندماجیه و همسال زاله که اونجا میتونید ملاحظه کنی خب اینم این تبیین تبیین بعدی بله حالا من باز میخوام عبور کنم یه دیگه شاید خلاصش بکنیم بد نمیشه حالا این بگیم وحدت حقیقی وجود و کثافت حقیقی دوباره مخلوقات حالا عرض یه تبیین هست علامه تبا تبا داره توضیح ارز میکنم ببینید ایشون یه فرقی داره تبیینش الان ارز بکنم هم میپذیره میگه ما سوا نسبت به خداوند وجود رابطن رابط یعنی چی ببینید یه تقسیم بندی در وجود هست در فلسفه میگن وجود یا فی نفس یا موجود یا فی غیر این قسیم اونها فی نفسهی یا فی غیرهی فی غیرهی یعنی فی نفسهی نیست چون میدونید اقسام باید متباین باشن تقسیم غلط یا فی نفسهیست یا فی غیرهی خب بعد فی نفسهی تقسیم داره انواع تقسیم یا جوهره یا عرضه یا چیه یا چیه فی بنفسهی به نفسهیه تقسیمایی که داره تو بدای نهایی دیگه فی غیرهی قسیمه اینه این هیچ نفسیت نداره. من بهترین مثال بخوام عرض بکنم آقا این دست من سطح بدن من وجود رابطه یعنی دست من در قبال بدن من نیست عین و رابطه بدن منه وجود رابطه اینها نه کنید یه موجود یه موجود این رابطه نه نه نه یک موجود در زیل اینه معنای حرفی همین تقریبا خب آی توباتوب الله می توباتوب ایشونی فرمان بله ما سوا رابطه خب می... همون شد که دومیش سومیش شد میگه نه یه فرقیشون داره میگه پس ببخشید دیگه با این بیان شما دیگه بسات مقولات و مقولات اشر و جوهر و ارز و همه رو باید جمع کنیم. برخی از اعاظم میگن دقیقا خان بله تمام این بساط جمع شه. اصلا با تلقی نو دارم دازم تو فلسفه. اصلا بحث های ماهوی رو جمع شه با قبول وجود رابط. ملتزم من. علا میگه نه. اینا نسبت به خدا رابطن. نسبت به هم نه. یکی جوهر یکی ارز. همه محفوظ سر جو خودشه. جواهر عراس ترجیه جو خودشون جواهر مادی جواهر مجرد عراض صفات همه ترجیه خوش محفوظ نسبت به او بالا همه رابطه این فرقش اینه با برخی تقریب های قبلی خب تفسیر بعدی وحدت حقیقت وجود کسرت وهمی ما سوا همون شعر معروف که دیگه هم هم کل ما کاون کون وهمون او خیال یعنی چی وهمون او خیال یعنی آقا این کسرات که تو داری میبینی ما دارم میبینم دیگه کسرات دارم میبینم میگه ها این ثانیه مایراه الاحوله آدم دوبین لوچ درسته یکی دوتا تا میبینه تو دوبینی بنده خدا اگه سیر رو سلوک بکنی مییابی جز یک وجود ما نداریم خب کسرات چه هم؟ کسرات وهمن مایوتران به ذهن میاد من الوجود نه اینا وجود نداره اینا توهم الوجودن خیال الوجودن نه خود وجود وجود یکی بیش نیست اینم یک طبیین که البته میدونید همین هم مورد هم انتقاد برخی از بزرگان عرفان و فلسفه است که میگن این حرف حرفه مثلا جهله متصوفه است که البته جای خودش باید این بحث بشه مرحوم آشتیانی آسه جلال آشتیانی میگه نمیدونم جهله بزرگان از اورفا همینه دیگه حالا جای خودش باید بحثید چرا جهله ولی خب منظور ملاصدرا عباراتی چه دیگه اکثر ان اکثر ناظرین فی کلام العرفا اینا چیه چون نفهمیدن حیث لم یسلو الى مقامهم یا مقامهم و لم یحيطوا بكنه مرامهم ذنو انهو یلزم من كلامهم فی اثبات توحید الخاصی فی حیات الوجود به بما هو موجود که چی انهو هیات الممكنات امور اعتباریه محض و حقائقها اوهام و خیالات لا تحصل لها چی الا به حسب الاعتبار دو اسفار داره یه چه حرفی غلط جای دیگ هم داره مفصل مرحوم آخوند داره که این حرف خیلی حرف سخیفیست و سبک. داریم داریم کم کم با خارش در می البته بعد وصول کنم یه بار میگم برگردم همه رو دوباره <تصفيق> <تصفح> اگه وقت بشه اگر نبود که یه جمع کلی میکنم <دیه> بله تغییر بعدی وحدت مجموع عالم پانتئیسم همه خدایی چاید مثلا بگیم حتی برقی آتیستام هم همینو بیکن یعنی, یعنی یک طبیعت واحد ما داریم حالا تاشیم ندارم بگیم یعنی بینهایتو آره یه ماده بینهایت ازلن و عبدنی هست دیگه شما هرچی میبینی تطورات و تعیینات همون همه یه دونست شما تلاشی که دارید میکنید شما موهدین برای اثبات سانه تلاش عبتر است نه یک حقیقت و یک طبیعت است و همه چیز اوست بقیام تطورات همو. بالا اونا نمیگن خدا دیگه ولی شما میگن اونا میگن یعنی اگر علاقه داشتید یا فرصت داشتید این مناظره این آقای امیری با آقای عبدکرمی بیژن اگه وقت داشتین استماع کنید خیلی خوبه این که هست اون بنده خدا همینو میگه به او اون آقای امیری میگه توی میگی وجود وجود وجود نه حقیقت وجود حقیقت وجود میگه حقیقت وجود چیه توی میگی ورای یا نه. اگه برای اینا نیست ما قبولش داریم اینی که تو میگی. مشکلی با این نداریم. ما مشکلمون اینه شما میگید یک حقیقت متعالی از اشیاء. ورای اشیاء مجرد از زمان و مکان حقیقتا از غیر همه ایناست. مثلا اینا رو خلق کرده، رزق میده، تدبیر میکنه، ربوبیت داره. ما اینو قبول نداریم. خیلی جالبه. آخرش های عبدالكریم میگی من به این خدا کافرم. کدوم خدا؟ خدای متعالی از اشیاء. ما دعوا میکنن اون توحید داره اثبات میکنه، رد داره میکنه. اون میگه من به این کافرم. خدای متعالی از اشا من قبول ندارم خدایی که خلق کرده ایجاد کرده نه یک حقیقت وجود منده خدام میگم که ما قبول تام خب این وحدت مجب... این این را نقل میکنه و به شدت رد میکنه ان بعض الجهله من المتصرفه چجوری داره توهم ولضعف عقولهم و وهن عقیدتن ان لا تحقق قبل فعل ذات الاحدیه خدا چیزی برای همینو نیست او خودش تحقق بلفل ورای اینها که اینا بشن تجلیات او نداره میگوی حرف خیلی باطله این چه حرفیه شعنه او رفع از این بالاتره بدون مظاهرهی و مجالیه بله تحقق خوه آلم و و قواه روحانیه و الله حوه ظاهر المجموع و لا غیر و ذالک القول کفر و فضیح چه حرفیه حرف بسیار غلطیست این همین این تبیع تبیع نشونزده هم خود جناب استاد آقای فیازی خودشون توی اون جلسه که با جناب استاد آقای عشاقی داشتن یکی از تغییرها رو همین مطرح کردن توی این کتابشون نیست این ولی اونجا اینو مطرح کردن تبیینشون اینه استیاب وحدت وجود استیابی یا نظریه تداخل شون اونجا میگه این هم میتونی که از تغییرها باشه او چیه؟ این خلاصش این میشه میگیم آقا بدون شک خداوند وجود نامحدود د بدون شک در این هیچ تردیدی نیست همه هم قبول دارن متکلم غیر متکلم ما سواهم حقیقتاً موجودن جناب استاد می فرموین. و غیر حقم هستن حقیقتاً هیچ اینیتی بین خدا و خلق نیست تصریح میکنش ولی خب آقای فیاضی شما اگه خدا نامحدوده خب آقایون میگن جا برای غیر نمیگذاره اینا در قبال او چی میشه؟ میگه آقا اینا در قبال او وجودشون، موتن وجودیشون ماثوا، همون موتنه وجودی حقه بدون عینیت. و بعد برای اینکه بتونن یک مقداری نظریهشون رو به ذهن تقریب بکنن، مثلا از فیزیک معاصر عیانان کمک میگن خودشون هم یه خاطره‌ای دارن با جناب استاد آقای گلشنی که ایشون میگه من این رو عرضه کردم میدونید در طبیعیات قدیم، فیزیک قدیم تداخل اجسام رو قبول نمی کردن میگفتن ذاتاً محاله که دو جسم در هم تداخل بکنه، به دقیق فلسفی ها، یعنی هر موطنی که جسم علف اجزایش حضور داره دقیقا در همون موطن بدون هیچ تساموه عرفی و مانند آن عرض کنم که جسم بهم حضور داشته باشه قدیمی‌ها هم میگفتن نمیشه اقلا محاله ولی من فقط نقل میکنم نمیتونم از فیزیک بلد نیستم برخی میگن که نه در فیزیک جدید اجمالا فل جمله نسبت به برخی اجسام چرا میشه نور و مثلا شیشه فرض کنید نور از شیشه عبور میکنه دیگه درست یا نه خب هر موطنی که شیشه وجود داره نورم وجود داره موطا نور و شیشه یکی هم؟ اصلا بابت اون وجود خودشو داره اینم وجود خودشو داره حتی شیشه شکسته میشه نور برای خودش هست هیچ ربطی به هم ندارن از این جد ربطی ندارن دو وجوده حقیقتا ولی در همون موتن حالا ایشون میگه شلون خدا هم بینه حتی ایشون هم میگه هم میگه فارق از این که این نظر درست باشه یا غلط غلطه ولی اگر خدا بی نهایته اگر بخواد اشار به وجود بیاره در کجا ایجاد میکنه خودش که بی نهایته حالا خیلیطبیره بخوام مثلا کارتونیش بکنم خدا هر جا رو نگاه میکنه اینه هست و کجا میخواد ایجاد کنه هیچ جای خالی نداری. چکار میکنه در خودش ایجاد میکنه بدون عینیت ها عینیت نیستا در موط خودش اشار لامنشه ایجاد میکنه و اینا موجود میشن حقیقتا و غیر ها همه چیه معدوم می هیچ هیچی از خودش کم نمیشه هیچ به خودش اضافه وقتی ایجاد میکنه. هم تحفظ کردیم بر بی نهایت بودن حق هم تحفظ کردیم بر وجود حقیقی خارجی اشیاء اینه اون دقدقه دینی هم که داشتیم با این مرتفع شد تازه خیالتون راحت باشه رواهات فراوانی هم داریم داخلون فلی اشیاء چه؟, چه همینه این هم همینه میخواد دیگه. این نظر جناب استاد آقای فیازی نظر هیچده هم اینی نه خیلی ما سوا موجودن خدا هم حقیقتا موجوده حقیقتا ما به ایجاد حق موجود میشن و حقیقتا وجودشون مطلقاً مباینه با وجود حق <تصفيق> نه حادثه ایشون کاملاً حدوث آلم رو البته معتقد ایشان که حدوث آلم دلیل عقلی ندارد قدم آلم هم دلیل عقلی ندارد یه حرف کانت که داره جدلی و طرف میگه هر کدوم دلیل خوش دارن، هیچ کدام تام نیست مشکل داره ولی از جهت نقلی ایشون تصریح کردن در هم گفتارشون هم آثارشون که رواهات متواتری که عالم حادثه یعنی خب بله الیتو که بله الیتو که همه میپذیرن یعنی همه متکلمان هم میپذیرن دیگه غیر از الهی و مایینه تا اونم بند خدا گفتن چیز دیگه خواسته بگی حالا این نظر جناب استاد آی فیازی ولبا تو این نظر طرفتاران دیگری هم میدونید داره دیگه خب اما قول هیچ دام وجود رابطی ما سوا ما سوا وجود رابط نیستن رابطی هن. خدا وجود مستقله اینا رابطی هن، نه رابط فرقش چیه در وجود رابط گفتیم وجود رابط وجود فی غیره هست هیچ نفسیتی نداره هیچ خودی نداره به تعبیر برخی بزرگان لا ذات للموجود الرابط او رابط هیچ ذات نداره هر چاست در زیل اون مستقله که هم مثال سادشم عرض کردم اما وجود رابطی چی؟ شما دیگه در اصول و اینام خوندید دیگه معنای حرفی تو ادبیات هم هست معنای حرفی مستقلا تصور نمیشه در زیل معنای اسمی تصور میشه ولی وجود رابطی مثل معنای اسمیه یعنی وجود فی ای داره وجود عراز وجودشون رابطیه نه رابط یعنی چی؟ یعنی فی نفسهی واقعا موجودن اما, اما نفسیتشون این چیه؟ للغير بودنشونه یعنی چی یعنی الان آقا بنده عالمم ان شاء الله هم عالمیم معنای فلسفی البته نه ارزشی همه بالاخره تصوراتی داریم دیگه خب این علم عرضه دیگه داره یا نه بله اما عرض این،, این،, این علم وجودی فینفسی داره بله تصور شما نمیکنی چرا مستقلا تصورش میکنم علم خب اما این علم میخواد در خارج موجود بشه مثلا موضوع میخواد لغیرهی موجود میشه ها لذاتهی موجود نمیشه جوهر نیست که عرض دیگه فرق جوهر و عرض همینه دیگه حالا ما صوا چین ما سوا. وجود رابطی هن نسبت به خدا و نه رابط یعنی کسرت کاملا هست کسرت واقعی است حقیقی است و اینا به سان همون اعراضی که عرض کردم به عین وجود حق موجودن ولی با همین توضیح وجود رابطی دارن نسبت به وجود حق نه رابط هم ماهیت هم ذات وقتی ذات نشد ماهیت هم نداره دیگه قهران ماهیت هم نداره بله دقیقا چون ماهیت مایوغال فی جواب ماهوه این اصلا مایوغال محمول واقع نمیشه چون رابطه دیگه منای حرفیه خب اینم این نکته خب دیگه دو تا دیگه هم هست این هم سری عرض میکنم یکیش نظریه حلوله که احیانا منصوب به برخی باز جریان های صوفیان است که استاد دیگه اینجا کاملا مطلع هستن و میتونن خیلی دقیقتر از بنده گزارش بدن که اینا هم مثلا فرض کنید که داره علامه هلی در برخی آثارش وقتی نقل بکنه میگه نقد متصوفه بکنه میگه کسانی که خداوند در عبدان عارفین حلول کرده که بعد برخی از اعاظم عرفان مثل مثلا شبستری اینها به شدت نقد میکنن دیگه حلول و اتحاد اینجا محال است که در وحدت دوی ای عین است. اتحادی نیست حلولی نیست دویتی چون نیست این فرع چه فرعه بر اثنینیت دوی نیست که حال در دیگری باشه حالی خب برخی اینه گفتن یا حداقل دقیقا منصوب برخی از جریانهای صوفیست و دیگه حالا بعدشو دیگه میگذرم که خیلی اهمیتی ندارم 18 تا فلا بلال حساب ها. بس خب این مقام اول بحث که عرض و که فقط تق طبیعین خیلی مختصر تقریرها بود حالا اون ادعایی که حقیر دارم ادعا چیه؟ ادعا اینه که برخی از این تقریرها اصلا وحدت وجود نیست به هیچ نفت اگرم باشه واقعا اصلا مجازم نیست غلطه خیلی تسامح دار اونایش که هست واقعا وحدت وجوده و قائلای جدی هم داره در همون طیف عرفا و ماننده اینها اونها هم درسته یک اختلاف ظاهری شما احساس میکنی بدعن احساس میکنی آره چند دیگه اینا فرق دارن با هم. ولی به نظر من یک روح حاکم در همهشون وجود داره و او چیه؟ و او اینه که هیچ کدوم از این تقریرها به خلقت به چه معنا خلقت؟ به این معنا نه که این خلقت قبول ندارن همش مسلمانان هم خیلی عاشق میان میان خدا خالق قایت قران رو می گریه می کنن قبول هم دارن ولی خلقت به این معنا که واقعا خود همونی که گفتم تو مناظرهه به این معنا که یک خدایی داریم یک وجود متعالی از هر خلق داره خلقم مباین وجودش با حق دو وجودن حقیقتا بدون هیچ ابهی مجاز یعنی کاملا صفات کمالیه یه مخلوق همش تمام صفات کمالش از خداوند چیه؟ سلب میشه مطلقا و صفات خدا هم صفاتش از مخلوق همش سلب میشه هیچ نحوه اینیتی به هیچ توجیحی نداره. اینو قبول ندارم تمام این تقریرها این خلقت به این معنا قبول نداره. چرا؟ چون یه مبنای واحدی در همه این تقریرها تقریبا وجود داره که خدا وجودش بیناهایته یا اینو واقعی میگی یا شوخی میکنی اگر واقعی میگی لازمش اینه که این کسرات حالا یا میشن رابط یا میشن ماهیت یا میشن شعن یا میشن نمود یا میشن حتی عدم نظر به ذاتشون یا تجلی یا چه یا چه هیچ کدوم یک وجودی ورای وجود حق ندارن تو همه اینا این تبیین این معنا ساری و جاریه حالا من سری عرض میکنم یک مروری میکنم من نمیدونم فقط چقدر وقت دارم که من بدونم چقدر جمع کنم اگر که لطف توام بگید تا دقیقه کنم حتش پرسش پاسو چشم، چشم، چشم. من دقیقه جمع میکنم خب بریم اولی که وحدت مفهوم بود انصافا انقلاب وحدت وجود نداره و خب، تمام ما و محدثا همه قبول دارن. تقریبا دیگه خدا موجوده و بله. ما موجودیم خوب بله یعنی موجود یعنی چه یعنی از همه ما هم از خداوندسا هم از ما تر عدم ادم شده دیگه هستیم دیگه واقعا واقعا هستیم باشه حالا وحدت وجود اینو چطوری رد می‌کنی مثلا چی اینو رد می‌کنی بحث نیست اشکالی هم مثلا حالا با دقت‌های عقلی کسی بخواد بکنه ربطی به وحدت وجود باز نداره که به این باشه وحدت وجودی به هیچ معنا نیست هیچ وحدت وجود کامل اگر اونی شعری که من خوندم از مرحوم نراقی و چون ببینی همین سعدی همین شعری که داره اگر شما دنبالش رو بگیرید آخرش میگه چیچو سلطان عزت علم برکشد اگر غلط نخونم شعرش رو جهان سر به جیب عدم درکشد اونم چه بسا معالش همون وحدت وجوده یعنی در قبال او هیچ نیستان خب برای هیچ نیستان دیگه وحدت وجوده همین رو میگن دیگه هیچ هم در قبال او دیگه که نه عدمه خب اونم که نمیگن میگن دیگه تجلی میگن دیگه یعنی تجلی خود اویند ورای اون نیستن دو وجود نیست تجلی خودشه مثل که الان بنده جای ساته نور یازم saute بشه نور خودمه دیگه نوره هست بله هست به عین من وجوده اگه همین باشه همون وحدت وجوده بله همشون همینو میگن اگه نه میخواد بگی نه بابا ما اینو نمیخوام بگیم یعنی بابا دیگه ما در مقابل تو اصلا به حساب نمیایم که اونم باز وحدت وجود نداره همه متکلمان عالم همه ما اینجا هستیم همه ما قبول داریم دیگه کیه که بگه نه من خدای در قبال تو مثلا میتونم با تو بجنگم علو سفریم او اراده کنه هستیم اراده نکنه معدومی مثلا نیستی و بالا قطعاً همین این وقت وجود نیست یا اونی که مرحوم زنوزی فرمودن حیثیت, حیثیت ارتباطی حیثیت ارتباطی اون وحدت وجوده یعنی وجود رابطن یعنی هویتشون ربطه نه یه چیزی هست آقا این یه سیبه بعد ارتباط با خدا داره واقعا این یعنی خدا ایجادش کرده اینو قبول نداره این سیب هویتش عین و ربط به اوست یعنی ورای او چیزی نیست مثل موج دریا مثال خودشون میزنن فراور همون تمام وجودی رابط که اینا میگوفن رابط رابط رابط نهایتا مطلب علامه طباطبایی اشکال به که توش اشکال کردن خیلی از شاگردای مکتبشون که آخه چه جوری میشه نسبت به خدا رابط نسبت به هم جوهر و عرض مگر رابط بودن معنی قیاسی نسبی نفسیه این واقعا رابطه دیگه وقتی واقعا رابطه دیگه جوهر عرض جمع شد دیگه از برخی شاگردهشون به جد نرد میکن میگه نسبت به هم